آنچه دیده بود یقیناً هیچ کدام از جزئیاتش چشمگیر نبود پیش از آمدن مادر سر میز غذا نرفته بودند منتظر او شده بودند هنگام ورودش احترام و ادب به جای آورده و هنگام ورود به تالار رایت آداب کرده بودند منتها این همه چنان به وضوح با چنان تأکیدی بر تربیت انجام وظیفه و مراعات شأن خیش ارزش شده بود که آشنباخ به طور عجیبی تحت تاثیر آن قرار گرفته بود او چند دقیقه دیگر هم صبر کرد و آنگاه به سوی سالن قضاخوری راه افتاده از میز خود جویا شد که با تعصفی زود گذر دریافت در نقطه‌ای بسیار دور از خانواده لهستانی جایی برایش در نظر گرفتند او که خسته بود و با این همه روحن احساس هیجان میکرد در مدت غذا خوردن که بسیار هم به درازا کشید به موضوعاتی انتظاعی و حتی ماورا و طبیعی مشغول بود در اندیشه رابطه اسرارآمیزی رفته بود که باید میان کل قانونمند با فرد خاص وجود داشته باشد تا زیبایی انسانی پدید داید و از آنجا به مسائل کلی صورت و هنر رو کرد تا بالاخره به این نتیجه رسید که افکار و دریافتهایش به الغاعت رؤیاهایی میمانند که ابتدا موجب خوشحالی آدم میشوند ولی چون هوشیاری بازگردد سستی و بیهودگیشان بر او هویدا می شود. پس از غذا مدتی را در باغ به نشستن و سیگار کشیدن گذراند و به موقع برای خواب رفت و به خوابی امیق فرو رفت که در عین حال از بسیاری رؤیاهایش سرشار از هیجان و بیقراری بود روز بعد هم هوا بهبودی نشان نداد باد خشکی فزان بود دریا زیر آسمان تیره گرفته و آرام بود گفتی در خود چپیده با افقی تنگ و نزدیک و چنان از ساحل عقب کشیده که چندین پشته ماسه بیرون افتاده بود آشنباخ پنجره اتاقش را که گشود حس کرد از لاگونا بوی گند می آید. حال گرفته ای به او دست داد و همان آن به فکر بازگشت افتاد سالها پیش پس از هفته ها هوای بهاری همین هوا سراغش آمده بود و دوچار چنان کسالتی کرده بودش که ناگزیر فرار از ونیز را بر قرار ترجیح داده بود یعنی همان بی‌حوصلگی تبالود درد شقیقه ها و سنگینی پلکها نبود که بار دیگر به سراغش می آمد؟ میلی به تعویض مجدد محل اقامت نداشت ولی اگر این هوا دست بر نمی داشت، ماندنش هم اینجا درست نمی نمود. محض احتیاط همه ی آنچه را با خداورده بود از چمدان بیرون نریخت. در ساعت نه، صبحانه را در بوفهی که برای همین منظور، میان تالار و سالن غذاخوری در نظر گرفته بودند، خورد. آنجا، سکوت فاخری که جز افتخارات هتل‌های های بزرگ به حساب می آید حاکم بود گارسان بر پاشنهای بی صدا در آمد و شد بودند صدای باز و بسته شدن شیر دستگاه چای و چند کلمهی که به پچ, پچ میان دو نفر رد و بدل می تنها صداهایی بود که به گوش میخورد آشنباخ در گوشهی کمیان ترفتر از روبه روی در و دو میز دورتر از میز خودش چشمش به دختران لهستانی و سرپرستشان افتاد. موی بور خاکستری را از نو شانه کرده با چشمان سرخ شده لباسهای صاف و ساده رنگ آبی به تن با یقه های افتان کوچک سفید و سراسستین های بسته و مرتب شق و رق نشسته بودند و شیشه مربایی را به هم رد می کردند ان صبحانه صبحانهشان به آخر می رسید. پسرک در میانشان نبود. آشنباخ لبخند زد میاندیشید. خب فاک کوچه انگار از حقوق خاصت خوب بهره میبری که تا هر وقت دلت میخواهد میخوابی و ناگهان خندهای کرد و پیش خود این شعر را زمزمه کرد زینت نو حمام گرم و آسایش بدون عجله صبحانه خورد از دست دربان هتل که با کلاه بندوزی شده یونیفرمش در دست به سالن آمد چند نامه را که به نشانی هتل برایش فرستاده بودند گرفت و در حالی که سیگاری دود می کرد، آنها را باز کرد این بود که هنگام ورود پسرک خوشخاوبیده که اعضای خانواده منتظرش بودند او هنوز آنجا بود پسرک از در شیشه‌ای وارد شده به آرامی از میان سالن انداخت رفت سر میز خواهرانش راه رفتنش چه از لحاظ حالت بالاتنه و چه حرکت زانوان و گذاشتن پاهایش با کفش سفید بر زمین بسیار دلپسند بود بسیار نرم در عین حال لطیف و قروورامی که شرمندگی کودکانهش نیز که بین راه دوبار او را واداشت سر را با گردشی به طرف سالن بلند کند و باز فرو افکند زیباییش را دوچندان می کرد لبخند به دهان با سخنی به صدای ملایم و به زبان نرم با اسوات در هم بر لب سر جایش نشست و حال که او تمام رخ رو به نظره داشت، این یک بار دیگر از این زیبایی آدمی زاده این زیبایی بهستی خداگونه در شگفت شد. پسرک امروز لباسی سبک از پارچه چهارخانه و قابل شست و شو پوشیده بود با توریدوزی ابریشمی سرخ روی سینه، که بالایش با ای ساده و سفید دور گردنش بسته شده بود و از فراز یقه که چندان زرافتی نداشت و حتی به شکل و ترکیب لباس نمی آمد سرش چون ای با دلبری بیمانندی سر برزده بود این سر اروس بود ساخته از مرمر پارس با ابروان زریف و پروقار با جعد ریز و نکه برگشته موها که گوشها و شقیقه ها را به نرمی در تیرگی خود فرو پوشانده بود آشنباخ با خود اندیشید خوب است خوب است که تعییدی بود سرد و کارشناسانه همان که هنرمندان گاه وجد و تحسین خود را در برابر شاه کاری بدان میپوشانند و باز اندیشید به اگر ساحل و دریا انتظار مرا نداشتند تا هرگاه گاه که تو میماندی من هم اینجا میماندم ولی حالا از برابر خدمتگاران که ادای ادب میکردند و از میان تالار گذشته، از ایوان به پایین و از پل چوبی انداخت رفت به پلاژ مخصوص میمانان هتل. آنجا از پیرمرد به ای که شلواری کتانی به پا، پیراهن ملوانی به تن و کلاه حسیری به سر، نقشه متصدی پلاژ رایفا می کرد، خواست که کلبه ساحلی او را که اجاره کرده بود نشانش دهد برایش میز و صندلی آورده بر سکوی شنی بگذارد و بر صندلی راحتی که بر شنهای شمعی رنگ به طرف دریا کشیده بود لم داد منظره ساحل این نمایش تمدن بیفکر و لذتجوی در هاشیه انصر آب چنان آشنباخ را به وجد می آورد که هرگز به یاد نداشت سطح صاف و خاکستری دریا از همکنون از کودکانی که آبتنی می کردند از شناگران و از حیکلهای رنگارنگی که دو دست را پشت سر نهاده بر های شن دراز کشیده بودند پوشیده بود دیگران در قایقهای کوچکی که به رنگهای آبی و قرمز رنگامیزی شده بودند پارو میزدند. زدند قایقهای بیلنگری که معلق میزدند و آنها میخندیدند. جلو ردیف کپانها که تا دریا ادامه یافته بود و بر سکوهاشان کسانی گفتی بر ایوانهای کوچکی نشسته بودند هم بازی و جنبش به چشم می‌خورد. و هم استراحت و کاهلی مصاحبت و اختلاط لباس مجلل و آرایش صبحگاهی در کنار برهنگی که بی و راحت طلب جویای بحری خیش از آزادیهای آن مکان بود جلو بر زمین تر و استوار شنی مسافرانی جامعه سفید تنی به تن یا با پیراهنهای گشاد و رنگین تک تک به گشت و گذار مشغول بودند. گرداگرد قلعه شنی پیچ در پیچ و پر تنوعی در سمت راست که به دست کودکان بنا شده بود، بیرقک هایی به رنگ همه ممالک جهان برپا بود. فروشندگان صدف، شیرینی و میوه زانو زده بسات خود را گسترده بودند. سمت چپ جلو یکی از اتاغک که مرز پایانی این طرف را عمود بر دریا تشکیل می‌دادند، خانواده‌ای روسی چادر زده بودند. مردانی با ریش و دندانهای بزرگ، زنهایی تنبل و از حال رفته، دوشیزه‌ای از منطقه بالتیک که جلو سپایهی نشسته با فریادهای نومیدی سعی داشت، تصویر دریا را بکشند. دو کودک زشت و سرحال و کلفت پیری لچک به سر با حرکات و رفتار مهربانانه و زیر دستانه کنیزان اینان از زندگیشان آنجا لذت می بردند و از آن سپاسگزار بودند مدام کودکان نافرمان و بازیگوش را صدا می زدند. با اندک کلمات ایتالیایی مدتی طولانی سر به سر پیر مرد شوخی که از او شیرینی و آبنبات میخریدند میگذاشتند صورت هم را میبوسیدند و هیچ در بند هر آنکه بخواهد قرق تماشایشان شود هم نبودند آشنباخ با خود اندیشید من خواهم ماند کجا بهتر از اینجا و دست بر زانوان نگاهش را بر گستری دریا سیر داد، تا افقهای دور، سواحل ناپیدا، تا بی غرقه در مه، او دریا را دوست داشت، به دلایلی که از اعماق روحش برمیخواست. به خاطر نیازش که نیاز هنرمند پرکار بود، هنرمندی که از گوناگونی طاقت فرسای پدیده ها در یکسانی ثانی پر حیبت طبیعت پناه می جوید. به خاطر تمایلی ممنوع که درست در جهت مخالف وزیفهش بود و از همین رو از نیروی وسوسه برخوردار تمایل به بی کرانه بی به بی به عدم، در دامان ازمت و کمال قنودن آرزوی هران کسی است که در پی آفریدن برترین است و مگر ادم صورتی از کمال نیست و حال همچنان که رؤیازده دران توهی بی نهایت خیره گشته بود ناگاه خد تهاشیه ساحل را قامتی قد کرد و چون نگاه از بیکرانه برگرفته به نزدیک خود بازگرداند، دید که این همان پسر زیباست که از سمت چپ آمده، از برابر او میگذرد. پای پایه میرفت رهنه می رفت. آماده آبتنی، ساقهای باریک را تا بالای زانوان بیرون انداخته. آهسته ولی چنان سبک و بی که گفتی راه رفتن بیپای افزار شیوه دیرینه اوست و به طرف ردیف اتاق که تا دریا پیش میرفت سر بود ولی هنوز به درستی متوجه خانواده روسی که شاکر و همدل به کار خود مشغول بودند نشده بود که طوفان خشم و انزجار چهرش را در هم کرد پیشانیش چین افتاد، دهانش به بالا کچ شد، از لبهایش لرزشی خشمگینانه به یک سو بید. گونهش را شیار انداخت و ابروانش چنان تابی برداشت که از فشارش چشمها در خود فرو شدند و نفرت خود را بیرون ریختند. سر را پایین انداخت، بار دیگر به خشم سر برگرد. پس آنگاه ای تکان داد که نمایشی بود از بیعتنائی و روگردانی و به آن خانواده پاشت کرد. گونه ای احساس رقت یا وحشت چیزی شبیه احترام و شرم آشنباخ را واداشت سر برگرداند. گفتی چیزی ندیده چه هر گر صاحب شنی که تصادفاً شاهد غلیان احساسات شده باشد حتی پیش خود از آنکه از مشاهداتش بهره جوید، اکراه دارد. ولی او همچنان که متاثر شده بود به نشاد هم آمد چون احساس خوشبختی میکرد. این تعصب کودکانه که بر ضد این دنیای خوشدلانه خود نمایی میکرد، این وجود ناگویا را با ناگویایی خداگونش به درون دنیای روابط انسانی کشانده منظر جانانه از طبیعت را که تنها برای حز بسر ساخته شده بود ارزش توجهی امیختر عطا می کرد و قامت پسرک نابالغ را که زیباییش او را ارزشی خاص داده بود عبادی میبخشید بخشید که شخص راوا می داشت او را شعنی فراتر از سن و سالش دهد آشنباخ همچنان روی گردانده گوش جان به صدای پسرک داشت این صدای نازک و اندکی ضعیف که می‌خواست درودگویان گویان از دور به هم بازیهایش همان کاران قلعه شنی آمدنش را خبر دهد. آنها هم به او پاسخ گفتند یعنی او را به نام یا صورت خودمانی از آن صدا زدند و با کنجکاوی خاصی به آن گوش داد بدون آنکه چیز درستی دستگیرش شود مگر دو سیلاب آواز مانند شبیه آجیو یا گاه حتی آجیو با اوی کشیده آخر که برای فریاد کشیدن مناسب تر بود او را این صدا خوش می‌آمد که با نوای خوشی که داشت با صاحب نام متناسب بود آهسته تکرارش کرد و با خرسندی رفت سر نامه ها و کاغذهایش. خودنویسش در دست و کیف سفری کوچکش روی زانوهایش خواست ترتیب یکی دو نامه را بدهد ولی به همان ربع ساعت اول حیفش آمد از این فرصت که لذت بخش ترین وضعی بود که می شناخت این چونین چشم بپوشد و در عوض به آن کار بیهوده بپردازد پس قلم و کاغذ به سوی انداخت و به دریا بازگه ولی دیری نپایید که به صدای کودکان سرگرم شنی سر را به راحتی بر پشتی صندلیش به راست گرداند تا بار دیگر نگاهی به حالات و حرکات آجیوی مورد نظر بیندازد و به همان نگاه اول او را یافت توری سرخ روی سینهش نگاه را فوراً به خود جلب می کرد. او همچنان که با دیگر بچه ها که می خواستند کهنه را به عنوان پل بر روی گودال خیس قلعه شنی قرار دهند همکاری می کرد با فریاد و تکان سر دستوراتی در مورد بنا به آنها میداد. آنها با او تقریبا ده نفر می شدند. پسر و دختر هم همسن او سه نفرشان هم جوانتر که به زبانهای لهستانی، فرانسوی و همچنین الفاظ منطقه بالکان در هم حرف می زدند. ولی نام او بیش از هر کلمه دیگری در فضا تنین میانداخت. آشکار بود همه او را می ستایند و همه طالب دوستیش هستند به خصوص یکیشان که او هم لهستانی بود پسرکی درشت اندام که به نامی شبیه یاشو صدایش میزدند. با موهای سیاه روغن زده و لباسی نخی و سبک کمردار بتن یار نزدیک و دوست سمیمیش بود وقتی هم کار بنای شنی را موقتا به پایان بردند آن دو دست در دست هم در امتداد ساحل راه افتادند و آنکه یاشو صدایش میزدند آن زیبارو را بوسید آشنباخ حس کرد میخواهد با انگشت برایش خط و نشان بکشد لبخن زنان با خود گفت و اما تو کریتوبولس بهتر است سالی به سفر روی چون درمان تو به این مقدار زمان نیاز دارد و انگاه به خوردن توت فرنگی های درشت و رسیده‌ای که از فروشندهی دورگرد خریده بود مشغول شد هوا بسیار گرم شده بود هرچند آفتاب قدرت عبور از قشر بخارات آسمان را نداشت حالی، روح را در بند خود داشت و در همان حال سهر دریا حواس را در خواب می کرد تلاش در پی یافتن نامی که به تقریب آجیو می به نظر نویسنده صاحب شن کاری شایسته می آمد کاری که در حد انجام وظیفه کامل به حساب می آمد و به کمک آنچه از زبان لهستانی به خاطر داشت به این نتیجه رسید که منظور باید تاچیو باشد و چه اختصاری از تادئوس که چون به فریاد آن را میخوانند صدای تاچیو میدهد تاچیو آب تنی میکرد آشنباخ که نگاهش او را گم کرده بود از روی سرش او را بازش دست های او را که در هوا می آورد و می در دل انواج دور از ساحل باز یافت پیدا بود که دریات ها مسافتی دور از ساحل همچنان عمقی ندارد، ولی انگار از همکنون نگرانش می شدند. صداهای زنانه ای از درون قسمت اتاقک به دنبال او فریاد می کشیده. و نامش را صدا میزدند. این نام را کمچون نام شب بر تمامی ساحل سیتره داشت و با حروف بی صدای نرم و صدای کشیده او در آخرش شیرینی وحشی داشت تا چیو؟ تا چیو؟ او باز گشت سر را عقب داده از میان امواج میدوید؟ و آب را با پاهایش عقب میزد که از سرسختی کف بر لب می آورد تماشای این پیکر جاندار که با زیبایی نارس پسرانه با موهای آبچکان همچون خدایی از میان آسمان و دریا از دل انصر آب تن بیرون کشیده دور می شد به خاطره اساتیر جان می این درسی بود در باب شعر و شاعری اعصار دور از پدید آمدن صورت و تولد خدایان آشنباخ با چشمان بسته به این آوازی که در درونش تنین میانداخت گوش فراداد. و بار دیگر اندیشید که اینجا جای خوبی است و او خواهد ماند بعدن تا چیو تن را در حوله سفیدی که از زیر کتف راستش رد کرده بود پوشانده سر بر بازوی لخت نهاده در ماسه ها آرامیده بود و آشنباخ حتی وقتی هم که نگاهش به او نبود بلکه صفحاتی چند از کتابش را میخواند باز از یاد نمیبرد که آن وجود ستایشانگیز آنجا دراز کشیده و او اندک گردش سر به راست میتواند ببیندش به گونه ای مبهم چونین به نظرش میآمد که گفتی او به مراقبت از پسرک لمیده آنجا نشسته به کارهای خود مشغول و در همان حال مدام حواسش به آن تندیس والای انسانی بود که در سمت راستش نه دور از او قرار داشت و ستایشی پدرانه اخلاص رقعتامیز آن که با سوختن خیش در پای هنر زیبایی خلق می کند نسبت به آنکه زیبایی را داراست قلبش را می آکند و به وشد می آور.